ویگرانی عزیز و خوشویش صلوات علی بیت خوشحال این لالقه 26مین خین نویکتیبی چشت مکریانی هاتین ولاتان فرمون هاورمان بن حجی مکریانی بردم ابیالاسترگرانوی سرگوزشتج جنی خوی استعلوکت دیا کلا آسایشگای بحنس بوده. ابیش لا ولات لبنان کا گندی مسیحنشینی لبنانیم. حجار لبروی که نقاشی سیلی گرفت بود لا عراق و روانی ابرکر. بعضی جنی خویدکات لاوشنده. اندلم ل نامه دا کشیش کو ملاکی نجفی پیدا بون. ملع نوى الشيخ خلافو زور وليا وقصه خوش لبير مجاريك پرسی پرسي لقرآن داداله زوی بميراد بو سالحان دميني اما یعنی سي اوشوتي منظور قرآن لسالح او کسانيا کب زوی دا چارنو اصلاحی ارازی دکن نكسو افل که ملای دزبرو تنبالی وکمن لواني استالین لو سالحان حسابه کشپیوه بو لتمن بیست و حوث سالی دا نوی اغستین بو تا نخوش نکوت بو با عمری خویی لدیر رکی سرچیای کی عراق در نکوت بو. لاتینی، اسپانی، فرانسی، انگلیسی، فارسی، ترکی، عربی، کلدانی کردی به هر دو زراوی کرمانجی و سورانی وکعاو دزانی. زوریش روح سوک و لشانان خوش بو. لخوای دویست دو پرسیاری دیبکی و جواب داتوا. پیانوت، باوش روحانی؟ اوی تو فیری به هزار زنه عرب زنن. توله چوه و چوه را او همو فیر بوی؟ اویش و تی؟ که که؟ عرب زمانکه ان بو تا بلاین اونده ان لخوان گران کردوه بسی سال فیری نبن خطه که ارامی کونی چور هزار ساله لان وایا کفر بیگوارن ناچار گرامیری چند جلدی با نسراوه کراست بخوان ریته و اگر واژ لاتینی بنوست رایه با پنجاپر گرامیر سازد بو، هر خریک زمان فیربن تا قرآن راز بخوان نوا، اینتر نان پر جتسر علمی تو رو با جاهلی پیرد بن. روزی پرسیم، بیانیان راهی بهک با چرای نفتی که دایر ساو کشیک و بدوري كلاسدا اگرنو زنگولارها دجینن، آو بوشیا، هیچو تیم. چون لکاتولی كی آمدش نه زنی، آو نش شیتاني دوري كلاسک کشوهاتون دردكن. منجوتم. جا بو چی دریاندکن و تی بو اوا یه مکششکان جگان بگرینه و لسر دوای او دستانی کرانک بیلی آناتول فرانسم کرد کردی هندگ دستکاری زنیانهی تیده کرد و پسندی کرد نسخه خطیه کم فوتاو بچاب نگیشد ل آخر و آخر که داویستم انگلیسی فردم فرهنگی عربی انگلیسی انگلیسی عربی و فرهنگی لحجه دربریم ل دو ریخم دننه و شبه و شا مانو لحجه دردی نمودین و سم لبری آکم بو زحمت گرانی که کی دم توانی داستانی حسن بخوی نماؤ کمتر کارم به فرهنگ به بلعن بداغ ول پاش چابو نام ل بغداد نانی رجنا نم توانی ل سری برامو ل آشنای باشم هبون ل همان حسین و تارنالکبو خالکی اماری عراق لخوم رو تو رجالت ل دنیا دا تا قبر جهبو اویش سر بازبو حسین زور ل ادبی عربی دا ذوق هبو بو خوندنوش پرسیپی اکردم کتبم بو حال دا بجار زور نیوان من خوش بو پیکو دگرین کورد گوتنی و گوی کر جود بوینو بو بوینه خمروینی یک تری سینما لا طبقه چوار بو د بوای هر کسه کرسی خوې بریو ل فیلم بروانه کلاسه بو لبر خواون سینمایند پارانوه بخیر فلمن ور دګرتو سر وچارګل لیډیشن لنخواشی تماشاکر دسن هر جور ځای هش نخوش بو کابرای کی سر تا شیلبو رادیو ددا به اجاره منګی به 16 ليره من هر زو رادیو شیکونم کریو هاو تا کانم له اجاره کرد. کاتیا چابو مو در چون به خزنز فروشت موه کومونیستکن حلقې درسن بو صبر یوسف نو چې کوردی مسیحی درس پېډګوتن وتی حسین بو نایش تک فیر بی، حسینم برده درسی، گوتم، علم اگر خوشی شدنوه هر باشه بیزانی، بونک نگبتی، درسی او روژه لمنفیس تی مرکسو انگلیز بو کداله هیچ خواهکی نیرو می و بری بیریم روی و راست نیه، حسین هستا رویشت، کلیم پرسی بو رویشتی، گویتی، برا، تو گوتت بهره علم دبینی، من شی ام، حسین و عباسم زور راستی اندرو با خوشیستی گرتو و هوگریم گرتو زورم پیش آدند. سبزی هر گوزو گنبده. آواهیم بداتم مایدال ما خوشیم لباسیانه. تاشتیک مندنی نبی داشتم لباسیانه. سبزی گوته. راز دکه. حق باه. سبزی با دنگو باسی کردستان زور کشابو. هر روز ناموگواری که اروپا و عرب هر چی اند درباره کردستان نو سیبو با سکانی بری بونو دبرگیر تبون. اکسی زوری هبون. تنانت روجه اقسي کی اي روجي الله حل کردن صاب الله نشانده مو ايشاره بو اقسي اي بچوكي دوریره وي ننصراو کرد که سربان بان لکنداري الله بو گوتي من لا ام اقسي اي تويا راستي دا کردو زرم پيزيرك بو تمره كي حکومت شغ محمود بايدگار دامه دو خنجاري تک پاريو بو لاسر نصرا بو حکومتي کردستاني جنوبي لو ديوش نصرا بو چوار آنه هیندم او تمره خوش دویستو تاقتم دکرد کلیمون بو. شویگ دستی حیکلی مسیحش که بو ورده پولی زیارت کرن دزره بو. زور رقی حلسه و تین تا گوناه برخوی در نخان نان تن ندینه. نا دمانزانی که وای کردوه بلام هنده هجار بو بزی من پیداده تو پوشی من. تن یو رو مینو او سه هندیک پاقلی کلاویان دینه. مسیری اکی کیجه مسیحی زور جو با دواندنم کفیده هد لمنی پرسی که اوی کردو و دستی خدای پراندوه گوتم لخدا خوی پرسن هموش دزانه ببزه که و گوتی لسرق اقصانه خود توشی بلاده که گفتو گو من دگل ماسیر کناوی ماری لویز بو هل دوری و رب دگره من دمو اگر مترتب فکر دا یا باش پرورده فکر و او مثلا بوبونه ته د ډاکټرو درماني حجاران نن لم که خود استي ورکردو بسری تا بکراسی په کراسي جاو ل زندان ډیر دا دجی اوش ما کاری خوې به بښ د زنیو دیگو خدمت اوراب دکم بلم زو جرد هات لمو د ګلمارو خوشبو روزې ګتم ما سير دسمه بیروت بو معاينه چاوم فرمایشتت نیا، وتینا تینا، هر هندم دوی قول بده که خود زور ماندو نکی. تیگه ایشتم چیل دلائه، بلام جل جیل کرد، و تم بپیه ماشین هیا، وا دیار بو هر دوک یکتری من خوش دویستو، ست کیوی شاهو من لنیوانده بو. خواردنی زور خراب، همون خوشکان مانیانگرد. گرد، یکی اک آلائی که بلولا و کرد بو، کرد یا خبر با بیروت دره، سفیر عراق و دکتر غوسن وکیل عراق درباری نخوشکانی اصایشگاهاتن. بونمیوانی مامیر گوشت برازو مریشکو پلاو اشی پیدگرا. خوش شرابی کونی کلیس هرما پرسه. من لسر تختکم نبزوتم. گوتم من نگرم. شکایت لای صبر کرا. گوتی بانه من با پیاوی باشی دزانم. خبر بمامیر درابه قوت بوی یک یک هی لو پرسنتا بزن امانه کمونیستو تشقل بز نو دروکن رگل مامیرک بانکرام لا سفیر بناف سفدا ک تی دپریم او شکانی خاین خاین کرینیر نیدکه شا سفیر بوتی کرم تو بل خدمت خواردن تان چون منشوتم قربان سگ دژیو یمژ دژین بدریجی باسمکر روی کرد وکیل و مامیر وتی کولمن له د سرنونو او شحالینه خوشا کمنه او قبول نکرې سفیر حته دروګتی ام کر باشی تیګان دین ک او چن مظلومن اگر او نبا لو نه بولې ربروینه نه خواردن خواردنو خدمتان چاک نکری دتان بین شونې شتر اتر خاین ګرد بو ببرای باشو صبریش آفری میکردم حرمت و خدمتیش زوری فرق کرد، این روش بو لبه نز بوم داگل احمد ناوی که کرد بوم آشنا زوری جماری گواری گلاوش هبو دو ای چل روش هاتو چوه کردن یک ترلی پرسیم اری کس نامه که بو احمد ندهوی منیشوتم ای خجالت خوم نامه کم هر دبا خال دای لو تیگیشتم که محمود و احمد بچک عربن لسولیمانی گوره بونو بونه کردی دل سوز یک نامه کم بو هات عزیز کاکا سی بو لأتال غازيب حالي مخراحبا ماذا أعطيب؟ جوابتي بو نوسيا و لأتال مبزو ناميكم بو برايم نادرين و سي كفريا بكوا برايم بردبويا منزل يخوي روشك عزيز بادو چرخه غيشتلا وتي تو چي و اير اس چي منشواتم دوائتو نامالاكم فروشت با قطار حاتم موصل چوما سنجار ميواني شيخي يزيدي بوم نارد مي قامشلي مالا جگر خوين، خريق بوك چاكي بخوازم، ساري نگرد، بدواي تو ده حاتم گيشت مشام، يستا حاتم بولاد، چند روشيك للاد دبم، منشوتم، ليرة ريگه ميوان نادن، وتي كواب يدسموا، خوا حافيس، باني او روشيوتيان لاوك لاوتيل بوا، دلين پارنا دا، هرايا، روانيم عزيزو دواي بيستو هشت ليري لبناني لياكن، دلين نيما، لو بالايا رزگارم کردو روشت، برايم بوينوسي بون، لارې دوی سره خی بکری جراو شکاوه من تاوان کم داوه عزیز لا چاپخانی کې شمد مزربو کاریه کرد جاري ابراهيم نوسي نصحتي بک دلید دسم مصر دلیم اوان نخشه ريقات مي دلیم من بنخشنا روم بو خوندچم لا جواب نو تو بزنه عزیز خو من به عقل تر نه زنه ته نصحتي بک فلسطینی سازده بو مورخي باره و جوک و نابوچوب و اردن گراب و ول ریزانی بو انفیاله کردو خستینه زندانه پاش دروش حسن زاین کودتای کردو جګلخوی کورد یک بو حسین بزازی سره وزیر شیله کردکانی شاری حمابو عزیز بردرا روجیک نامه هین آسایجګه بنجیکرد پی ان کی عزیز ناو ایرانیا نامه چی ای بدروش می پشیلو کلمی ایرانو هینابو تا وترسم خوایه چقو ماوا. نامی سفارت ایران له لبنان بو که آغای عزیز نانوازاده کرمن بتونیا بو نشیو مهنی عزیز آدرس عزیز من بو روجګل بغداد نامی عزیزم من بو هاد. در روم اولاد کرتنی نو سیمه خبر مالون بو بنیره پښمه وک عکس کوروجن خوش کو برامي بنردم دګل څو ورځې نامی شيرانی نوسی بوشي مجله هلال او جماره باسی روسي سوره بنیره فلان اوټل لا ایدی خبرم لعزیز برا، لسال هزار و سیاست و پنج و چواری هتاویده، که هاتین ایران بیستم کناوی دکتور عزیز جیانو ماموستای دانشگاید. پینزمانگ یک بول بیمارستان بوم، رادیو بغداد بلاوی کرده و که رفیق چلاکی کومونیست و اقراری لسر همو اندامانی حزب کرده و او هر روژه نوی چند کسی کند لسر رادیو بلاو ده دلم لرزی، نکر نیومنیش بلیو لبیمارستان و بمبن زندانی بغدا، سرباریش رفیق دمناسی کلکومالاو حاتوم، خواه هاور، همو روش یویم برادیو ده نه، روشنامه بغدام ده پشکنین، لنای خوم دگررم، نه خیر، نه ام نهد، حناسی که آسودم حلکیشا، رفیق یان کرده یوینده رادوی کوردی بغداد حقوق جاسوسی و گوینده یورده راستی گویند او آدی بیا کند وای وسر زاوک خستم چند جالگ انتقاد و پیش نیارم بنابی. قوی تاسپا پوله ونر دول رادیو دا جابی ادامه. نخوشانی کرد. چند سال بول لعنت مامیر رو دکترانو با ازاتر بنیادم نسرابون. بن نمونه شیخ عبدالقاهری که نود برد که با عملیاتی پراسو بمشربرین نهشتوه نیشت و که هاتون خلاص من گتویا دکتر. پیغمبر فرمویا خو رحم بو و نبکا کسناتی خو ان باج دکن کورد کی تر بناوی سیدو ل جنگی عملیات د کنی هشتو به هوشیکن غتويه ډاکتور بشی ببره تازه نتوانم ان بیموا زور داستانیواله کردن ببوا شو چرای چون چونکه عرب هر مقاصیاند دی د گریانو هزار جونین به مسیحو جدو آبادی ډاکتوران داده ام اوینا بیازاتیه بو کرد رجابو هر کرد یک بین آلانده دیان گود تو کرد نی. کرد زور بغیراتن. جا ایما چند کرد یک کلوی بوین زورش من ایش پیگهی با پیمن شرم بو حوارکین. من کلکلن دا ایوپیز پیدا بو بو بجوره ترومپاک خالیگین کند کردم. آوین لیده کشو در منین تیه هفته دو جر امکاره کرد. روز یک دکتور هاد. واب دو ماسیر تیم بربونو کولم دکن. دیتی حالم زور شد. دستی لیبردن کس و آزاری در نابه گوییم ادیبو چی هوار نکه هیچ گویی کرد هوار نکن شیخ قرتن لبر نماوا جاریک دبوا در زی لزگم دن حلم کرد پرلا توک دکتر گویی وقت زگب زنده شه گوتم دکتر وقتیار شارزای نسرایی با پیرامای منکان دستم ام دکتوره الانو همون دکتوره که انتربچ که مسلمان نایب حبيب بو، اویش با من دالی معمر بخیه بکرده بو، و کری خویلی دروانيو کرد بو یه سروکی دکتورانو نازداری باوان. هر چی بگوته بقسه یکراه. جگر ل دکتری که چیزور ادیبو ل ادبی عربیداش هرزابو. ل بحنس پیشوانی بیمارستانیتر نخوشه ک حال زور, بي زور شرباو همید با شب و نوین با رب هو روان پیندگود بشوره و ملا توزورن اجی جاریک لسرداند به منیگو توپچو لیک سوکارت منج وتم دکټر هیڅ قسم نیول عراق غریب ترم طالبنان لا توا دمرم وتی بخوه هرچی بود دکم حرکت نکه لا بجمن دیالی منج وتم دکټر بلی چا نابی ما فر حرکت نکه چونکه برو باجگرانوش هر حرکت وا من به غار مردن پل دبم تماشای و تو تون پیشته کی سیره؟ جامعه آویزی دل دهوارد بی؟ با اشکراه حکم اعدام در قط نمی و دکتر بوکس دروب کا بالد دمرم لاموای معاود ده دقیقه تاسم. ترمایه اسرائیل ده تبرچام وقت قبلی جمله فری بالی دبو لپروشم هت وبر. هیرن من نزیکی سی ساله دجیم جیان هر او شرشقو شکو کربازاری کدیوما با او آو دردم دم دید. با پیری دگمه چوه؟ سینمایا؟ تماشای خود کردوا با جای بیالو خمی پیناوی بس نیا لخم برزگارم ده بی حت موصر حالو ملم لگال تو گپی خوم نایا و وک نبام پیده حت بی و حت موصر دقی شش روش درمانیان ندامی گوتم دکتور تو هیچ نبی با قستیج بی شتیک ببنوس با پی بخلافیم درمانیان بونوسی ما اوانی حاتبونه او نخوشخانه فقیر و دولمند یان پرتی که انه بو یعن زور یعن زمان لوسی دگل کردو کاری خوان پیگدینا. من کسم نبو. نشم دتوانی لبر پیرجنا فرانسیان ملکس کم و خمشیرین کم. ماسیر سوزانه که بو زور تو رو زمان شر. خوشی ندویستم. راجک در منم با نوسر ابو نیدامی. زورم دل با خمسوتا. نامه یکم با دکتر حبیب نوسی. شعری شعر ی معنی بنی زائدین سی و دله ای بخشنده معن معنی در باره من سرت دگل ما روح تا کاریا کنم لباس ایرانی بونو چونتی هات نم لعراق او بلنان چون بو تیمګن نوسیشم نه پارتیمه نه دلم برواعده لبر پیررنن ریایب کم با انسانيت خود کاکرم به که غزکی خوندو نا عرفانی و, و روش هاتن ګچند ډاکټر لوتاغ خوی تویدو لای خوږه جای نشاندم گوتی برا من دب مکه سوکار حبیق تازه پیتابوا دولت عراق نیدا به فقیرن چون که زور گرانو به 600 لیری لبنانو روزانه به 24 دانه بخوره بو طبقه سیه تهبل من لوان د جرمو ادمه به 2000 حب ل خاطر رخصامو روز به روز ل گرانی عزیزو و خۆشەویست و دنیای کتب لێرە داو بەم شێوەیە هاتی نکۆتایی بەشی ش خوێندنەوەی کتێبی چشتی مجوری حجاری مکرریانی تا بەشێکی تر شاد و بەختەوە بن